بسم الله الرحمن الرحیم در درس قبلی دیگه خودش در بیتی آخرین بیت یعنی بیت هفته دوم گفته بود که و قد تناهد قسمت الفروضی من غیر اشکال ولا غمول مبحث زوال فروض و همه مواردشو تموم شد مسلمه که اینجا بحث عصبه ها رو میاره چون انسان به دو شکل ارث اصلا بر دو نوعه یا صاحب سهم یا عصبه هست اونایی که ارث میبرند اون وارس, وارس هایی که قبلا یادشون کرد که ارث میبرند از زن و مرد گفت اشاره کرد اونجا که به دو شکل ارث میبرند یا صاحب فرزند یا به تحصیب ارث میبرند ارسل تعصیب. صاحب فرزان اونایی بودند که سهمیشون مشخص بود یک دوم، یک چهارم، یک هشتم، یک سوم، یک ششام، دو سوم اینا رو مفصلا توضیح داد حالا در این درس توضیح میده اونایی که رو از راه تعصیب، از عصدگی ارس میبرند و حق انشرف تحصیبی بكل قول موجز مصیب ميگه واجب گشت که شروع کنیم در بحث تعصیب بهر سخنه خلاصه درستی خلاصه سوابی فکل من احرز كل المالی من القرابات او الموالی او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضله در این دو بیت میگه که عصابه جمعش اصابات هست چه کسی میگه هر کسی که کل مال رو میبرد چه از قرابات باشه از اونایی که با نسب وصل میشن اول موالی یا چه اونایی که میتو آزاد کردن حالا چه مرد باشه چه زن باشه پس اصابه اونی هست که کل مال رو میبره از نزدیکان یا از موالی او کانا ما یفضل بعض الفرض له فهو اخو الاصبعه المفضله یا میبرد باقی مانده مال رو فضل مال رو بعد از فرض بعد از اینکه صاحب فرض صاحب فرض فرضش رو برد صاحب سهم سهمش رو برد باقی مانده رو میبره اینو میگن دسته پس اونی که اگر تنها بود کل مال رو میبره و اگر در مسئله صاحب فرض بود بعد صاحب فرض باقی مندر رو میبره فهو اخوالعصوبت المفضله پس اون هست برادر عصبه فضیلت داده شده مفضله یعنی فضیلت داده شده عصبه های دیگر چون ممکن است ما انواع عصبه داریم عصبه بغیر داریم عصبه معغیر داریم و الی آخر پس اخول اصوبتی المفضله پس این هست اسبب نفس مفضله اسبب نفس داریم اسبب غیر داریم اسبب ما غیر داریم که البته توزیشون جای دیگر هم مختصر رد شد مثلا شخصی فوت کرد یک پسر داشت خب کل مالو میبره اون عصبه هست شخصی فوت کرد مادر داشت و یک پسر داشت مادر صاحب فرض صاحب سهم ابتدا سهم مادر رو میدیم یک ششونش رو باقی مانده رو میدیم به پسر پس عصبه اون اگر تنها بود کل مالو میبره اگر نه صاحب فرض همراهش بود ابتدا صاحب فرض ما خودشون میبره باقی مندر رو میبره کی؟ اون این عصبه به نفس بود که در این دو بیت توضیحش داد خودش با مثال میاره براش کل ابی والجدی و جد الجدی مانند پدر پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ جد الجد والابن اند والباتی پس مانند پدر پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ, پدر بزرگ. یعنی انزول پدر پدر بزرگ که خودش میشه جد و العبن اند قربه والبعد و پسر یعنی پسر نزیک و دور پسر و پسر پسر و العبن اند قربه یعنی پسر پسر خود و البعدی یعنی پسر پسر و هرچی پایین تر بره پس داره اصابه به ها رو ذکر میکنه مثلا با مثال میگه ماننده پدر پدر بزرگ و پدرش هرچی بره بالاتر و پسر پسر نزدیک که اون پسر خودمیته که بهش میگن ابن سلم و پسر پسر و هرچی پایین تر بره دیگه آیه بیت هفته هفته هم بازم ادامه میده و الاخی برادر این هم اصله هست و اول الاخ پسر برادر ال برادر چه شقیق باشه چه برادر پدری باشه پسرش هم چه شقیق باشه چه پسر برادر پدری باشه اینا عصبه بنفسند وال اعمام موها و سید المعتقد انعامی سید آزاد کننده که انعام کرده است آزاد کرده است طرف میت رو این هم عصبه بنفسند مذکر باشه چه موننس فرقی نمی کنه. در عصبه به نفس ها ما فقط یک موننس می داشته باشیم اون هم همین هم آزاد کننده هست وگر نه بقیه هم مذکرند در بیت آخر این چون اشاره می کنیم میریم دلوته. و هاکد بنوهم بنو جمعیه میگه تمام اینایی که اسم بردیم یعنی اخ ابن اخ اعمام سید موتق و هاکد و بنو هم جمعیه و همچنین فرزندان اینها هم اثره هستند. فکن لما اذکروهو سمیعا به انترا که ذکر میکنن شنبنده باش حرف کشکن باش یعنی اینو شنیدن فهم و قبول بشنو بله برای شنیدن فهمیدن و قبول بشنو حرف مرا فکن لیما اذکروهو سمیعا انشرا که ذکرش میکنم قبولش کن بشنوش قبولش کن خب اینجا یه مسئله شارع میکنه و اون این که مثلا یکی فوت کرده بود تمام اینا رو داشت خب اینجا دیگه اگر تمام اینا رو داشت اولویت بندی دارن بله ميجي خودش داري ميجي وما لذي البعدة مع القريبي في الإرث من حظن ولا نصيبي ونيست وما ونيست لذي البعدة براي اونيك دور هاس مع القريب براي همراه باونيك النزيك هاس في الإرث من حظ ولا نصيبي دار إرث سهم و دور هست در جهت و درجه همراه با اون وارثی که نزدیک هست در جهت و درجه در عرض و نصیبی ندارد اون دوره بله جهتها چه هستند در میراث در عسبه بنوت هست این فرزند بودن عبوت هست بعدش این پدر و بالاتر اخوت هست این ترتیب شده یعنی اگر شخصی فوت کرد یک پسر داشت و برادر داشت خب اینجا پسر میبره دیگه برادر ارس نمیبره شخص فوت کرده برادر داره و عمو داره برادرش ایرسو میبره دیگه عمو نمیبره این بیت اینو میگه و القریب فی من حظ ولا نصيبی نیست برای کسی که دور است همراه با نزدیک در ارث نصیب بهری اونی رو که دوره همراه با نزدیک با ارس در ارث بهره و نصیبی نداره نزدیکتر میبره دورتر رو محجوب میکنه باله پس اونی که جهاتش نزدیک، اونی که جهاتش دوره رو محجوب میکنه ابن اخو محجوب میکنه اخ عمو محجوب میکنه وعلا خوب والاخو والعمو حالا یک مسئله دیگه رو بیان میکنه ما یکی داریم جهت جهات عصبگی همون بنووت و بووت و خووت عمومه اما بودن اونا یکی داریم درجه و یکی رو داریم بشت میگن ولی که درجهش نزدیکتره اونی که درجهش دورتر رو ساقط محجوب میکنه ابن ابن ابنو محجوب میکنه و یکی رو میگن قوت یعنی اونی که از دو جهت به میت وصله مثلا برادر شقیقه شخصی فوت کرده برادر شقیقه داره با برادر پدری برادر شقیقه دیگه برادر پدری رو محجوب میکنه برادر پدری اینجا دیگه نمیبره حالا میگه والاخو والعم لامن و الاخو و والعم لأم و ابی اولا من المدلی بشطر نصبی میگه برادر و اموی پدر و مادری اولاتر هستند از اون شخصی که وصل میشه بمیت با نصف نسب. شخصی فوت کرده، یک اموی شقیقه داره، یعنی یکی داره که برادر پدرش، برادر شقیقه پدرش هست، یک اموی دیگی داره که فقط پدرش با پدرش، پدر امویش با پدر پدرش یکی هست. مادرشون یکی نیست، شقیقه نیست، اون اینجا اموی شقیقه، اموی پدری رو محجوب میکنه باره. همین میگه این باید. میگه والاخو والعم لام و ابي اولا من المدلي بشطر النسب پس برادر و عموی شقیقه اولاتر هستند از اون شخصی که مدلی وصل میشه به میت بشطر النسب نصف نسب پس اگر جهت یکی بود درجه هم یکی بود قوت مهمی است اینجا درجه یکیه جهت هم یکیه او قوت شخصی فوت کرده یک برادر شقیقه داره یک برادر پدری جهت که، او قوته برادریه درجه هم یکیه هر دو تا اخند ابن اخ کنیسی یکیشون، شو اینجا چرا برادر شقیقه اون نمیره چون این قوی تر است این از دو جهت وصله است پس این سه چیزو در عصبه بودن در نظر بگیریم زمانی که ها زیادن جهتو درجه رو و قوتو بله والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث پس تا اینجای ای کار عصبه به نفسو توزی داد یعنی اونی که به تنهایی عصبه بود کسی دیگر اونو عصبه نمی‌کرد برادران بودند پسران بودند پسران پسران پدر اموها توضیحات داد کدومه کدومه رو ساقت میکردن محجوم میکردن این رو توضیح داد الان به یک نوع اسبای دیگه اشاره میکنه در این بیت میگه والابن والاخو معال اناسی یعصبه مهنه فیلمی را پسر و برادر همراه با زنان این یعنی همراه با خواهرانشان یعصبنهن یعنی عصب میکنند آنها را یعنی ابن و اخ عصب میکنن خواهرانشان را زنا ایناس را فی المیراثی در میراث شخصی فوت کرده یک ابن داره و یک اخت داره این ابن اون خواهرش رو چیکار میکنه عصب میکنه میگن عصب به غیر برادر همجوری شخصی فوت کرده یک برادر و یک داره اینجا دیگه خواهر از راه فرض یا از راه سهم ارس نمی باره بلکه عصبه شده برادرش اومده اینو چکار کرده؟ عصبش کرده که لنده کرده مثلو خده اون سین میشه و الاخواتو انتکن بناتو یک نوع عصبه دیگه وجود داره که در این بیت هشتاد دوم توضیحش میده پس سه نوع عصبه داریم عصبه به نفس بودند. جز یک نفر که در بهت هشتا سوامونو میگه عصبه به غیر دختران بودند دختران پسر بودند و خواهران که به وسیله برادرانشون چی میشدن؟ عصبه میشدن به اینا میگفتن عصبه به غیر یک گروه دیگه عصبه داریم که زنان هستن به وسیله زنان هم عصبه میشن کیا هستن؟ اونا خاهران هستن خواهران شقیقه و خواهران پدری اینا عصب معغیر میشن با کی با دختران میت با دختره دختران میت و الاخوات ان تكن بناتو فهن معهن معصبات و خواهران اگر اونجا بنات وجود داشته باشه یعنی میت با دختر داشته باشه والاخوات ان تكن بناتو و خواهران اگر دختران باشند یعنی دختران میت فهن پس این خاهران معهن با اون بنات این دختران میت معصباتو عصب میشن بله ولی اخواتو این تکن بنات خواهران اگر باشد دختران دختر یا دختران فهن معهن معصباتو پس این خاهران با اون دختران میت عصب میشن با مثال میکیم شخصی فوت کرده دو دختر داره سه دختر داره بیشتر کمتر فرقی نمی کنه با دو تا خوهر فرقی نمی کنه چه شقیقه باشه چی پدری خوهر دختران اگر دو نفر باشند دو بیشتر دو سه وم می برن دو سه ومو بشون می دیم یک سه وم دیگه که باقی می مونه شخصی فوت کرده دو دختر داره با یه خوهر دو سهوام میدیم به دو دخترش باقی رو میدیم به که به خواهرش این خواهرش اینجا شده چی؟ عصبه معغیر. باید. و لیسه فی النساء طرن و در همگی زنان عصبه ای وجود ندارد دارد. منظور عصبه به نفسه وگرنه عصبه به غیر و عصبه معغیره کتوزش رد عصبه به نفس در میان زنان وجود نداره زنان یا عصبه به غیرند این برادرانشون اونا رو عصب میکنند یا عصبه مع غیر خوهران مئیت که دختران مئیتون رو عصب میکنند و لیسه فی النسائی طرن عصبه و در میان زنان عصبه نیست همگیشون طرن یعنی همگی و نیست در زنان همگی عصبه منظور عصبه به نفس الا التي منت به اطق مگر اون زنی که مننت گذاشته است تو میت رو آزاد کرده است. بله. این کننده اگر زن بود اون موقع عصبه به نفس است. شخصی فوت کرده. بردهی آزاد شده ای فوت کرده است. خودش میراث بر نداره. مالش رو میبره کی؟ همونی که آزادش کرده است. ولو اینکه زن باشه. این زن اینجا اگر آزادش کرده است عصبه به نفس است پس در میان زنان عصبه به نفس وجود نداره جز این للتی منت به اطقر رقبه مگر اونی که منت گذاشته است تو آزاد کرده است یعنی جز معاتقه بله موفق و پیروز باشی